أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا اشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله العالمين وخاتم النبیين ابل قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام و المعصومین علیهم مسلام ادهی پیشگاه مولانا و مقتدانا و صاحب الاسود زمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون صلواتی تقدیم کنیم اللهم صلو علی محمد و آل محمد و عجل فرده هم و در زیل بحث خداشناسی با سبقه غیر کلامی یعنی خداشناسی نه به سبک کتب عقاید که یک ضرورت برای خودش و بحث بسیار مهمی هم هست اما معرفت شناسی خدا منحصر نیست در اون سبک و معارف معرف اهل بیت علیهم السلام در معرفت الله سبقه های دیگری رو هم مطرح می‌فرماند به بزان همون برس برس کردیم که امام شناسی هم همین جوریه و حتی رسول شناسی هم همین گونه است و حتی کتاب شناسی کتاب الله شناسی و حتی مؤمن شناسی یعنی ما جایگاه ها رو گاهی در یک هیته خاصی محصور می کنیم که حالا به زبان ساده تر کنیم. ما گاهی خدا رو عذلی بودنش و و عبدی بودنش و و علم و قدرت رو حیاتش رو ثابت می کنیم خالقیتش و رازقیتش و, و به نسبت ای که در کتب کلامی هست یک صفات محدودی ولاکن ضروری در بحث توحید اثبات میشه برای خداوند تبارکه و تعالی این صفات خب لازم هست مباحثش هم حالا اگه درست مطمئن بشه ضروری هست ولی کافی نیست خداشناسی در کلام اهل بیت علیهم در قرآن کریم در کلام وح منحصر به خداشناسی به شکل صرف که کتب کلامی و عقایدی نیست که اون بحث جای خودش بنا مطرح بشه بحث امام شناسی هم همین گونه است امام شناسی که بحث عدلی ضرورت وجود امام علیه السلام برای ما تهدید میکنه و تقریر میکنه اصلا با فرمایش آقا علی ابن موسر رزا علیه آلاف و تحییت و ثنا در امام شناسی نسبت چندانی نداره اصلا وقتی سراغ فرمایش حضرت میریم میبینیم امام رو از یک زوایای دیگری تعریف میکنند. خیلی متفاوت. حالا از تشبیه به شمس طالعه شمسی در افق دست نیافتنی. خب این حالا میگیم یه جوری همون بحث های شبیه دست نیافتنی بودن تصور خدا امام هم فراتر از اوهام ماست. و والعبصار در افق شمس امامت فراتر از دسترس عیدی و ابصار چشم ها هم خورسید امامت رو نمیتونن به نظاره بنشینند چه برسین که دست ها برسن به ساحت مقدسش خب الوالد شفیق الانیس و رفیق الاخ و شقیق الامولبره امثال این تعابیل که در این فرمایش آقا عدی ابن موسردزا هست اینا امام شناسی کلامی نیست ولی در این حال یک ضرورت در بحث امام شناسی خدا اگه در اون دای معروف معرفت الله رو و معرفت الرسول رو و معرفت الحجر رو به عنوان پایه های اصلی معرفت در قادب یک دعاء به ما ابلاغ میکنه در لسان معصوم علیه السلام معرفت الله فقط به اون سبکو نمیخواد از ما اللهم معرفی نفسک خوده من فقط رو بشنسم واجب وجودی و با مثلا دلیل علیت ثابت میشی و ازلی و ابدی هستی و علم و قدرت و حیات هم داری خالق و رازق هم هستی در همین حد قطعاً اللهم معرفی نفسک فراتر از اینه و به همین وزان اللهم معرفی رسولک هم همین گونه است و بر همین وزان اللهم معرفی جتک هم همین گونه است حالا به تناسب بحث امام شناسی و در زلش علال قاعده گریزهایی به بحث رسول شناسی هم باید باشه که جایگاه رسول و جایگاه امام در روایات چگونه تبین شده در هیچ کتاب کلامی امام رو با من اعبدالناس نمیان بحث کنن که امام اعبدالناس باید باشه از هدالناس باید باشه اشدالناس باید باشه به فضائل اشاره ای میشه در کتب. امام رو که میخوان معرفی کنن نصر بر امام رو که میخوان تبین کنن گایی اشاره میکنن که به بحث علم و به بحث شجاعت هم نیز اما رحمت امام مهربانی امام شفقت امام امام محسوم علیه السلام به تعبیر آقا ابن مسردزا مثل یک مادریه که با بچهش چقدر مهربونی داره این عطوفت این رئفت در کتب کلامی مورد بحث قرار نمی گیره چون هیته اصلا اون ها این نیست یعنی وظیفه‌ای که تعریف شده انجام شده ولی اون وظیفه به وسعتش تعریف نشده و کار متکلم هم اینها نیست اما معرفت الامام علیه السلام قطعا اشمل و وسیعتره. خوب خب پس ما باید سفره امام شناسی به این مباحث بپردازیم و این مقدمه رم باید ارز کنیم که آمیختگی معارف اهل بیت هم در مباحث توحیدی هم در مباحث رسالت هم در مباحث امامت و ولایت آمیختگی این مباحث با هم دیگه کاملاً مشبوده یعنی نمیان حالا مرزبندی کنن که تا اینجا مثلا امامت کلامی از اینجا و بعدش امامت با سبقه حالا المعارفی اسمشو بزنین بذاریم چی نام بگذاریم نه امام شناسی رو با همه زوایاش به صورت مخلوط مطرح میکنن توحید هم اینجوریه خداشناسی در کلام اهل بیت علیه مسلام آمیخ دست خطبه توحیدی یک گریز به بحث رحمت داره یک گریز به بحث ضرورت وجود خدا علم الهی همه مباحث با هم تجمیع شده و بحث معرفت الله شکل گرفته آیا امام معصوم علیه باید محبتش به ما از خود ما به خود ما بیشتر باشه اصلا ما بایدها رو میتونیم بفهمیم یا این یعنی امام شناسی بیشتر باید جنبه نقلی داشته باشه در اون مباحث شما ممکنه قائل قاعده،, قاعده لطف رو بیارین به میدان بگین قاعده لطف ضرورت وجود امام رو ثابت میکنه حالا با مناقشاتی که بعضیا دارن اما بالاخره اون یک قاعده است قائده نقلی محسوب نمیشه با قاعده لطف میان ضرورت وجود امام محسوم علیه السلام ثابت میکنند اما اینکه امام واجب الاطاعه ولی امری که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم قطعا ولایت او رو فرض کرده و اطاعت او رو واجب ساخته باید عبد و ناسم باشه از همه باید عابدتر باشه باید اصلا همم زاهدتر باشه جز به صفات امام صفات امام الاسلام در روایت هر ساده الله در فرصتهای بعدی اون روایت رو اشاره میکنیم و مصادقش رو که حتی در امامت کلامی ما صفت علمی که ثابت می علم با همه وسعتش نیست در اون علمی که در اعتقادات رایش ثابت میشه علم امام به احکام ریز و درشت احکام ریز و درشت معارف اما هیچ وقت اونجا ثابت نمی‌کنند. کنند دلیل عقلی و کلامی نداره که امام معصوم باید سخن پرندگان رو هم بفهم امام محسوم باید به همه زبانها بتونه تکلم کنه و زبانها رو متوجه بشه نه این دیگه در حیطه علم کلام نیست ولی در حیطه معارفی تعبیر در بسار درجات منابع دیگه اگه ما اینو ندونیم پر چه فرقی با شما داریم اگه قرار باشه خدا کسی رو حجت خودش قرار بده و خبرهای آسمان از او مخفی باشه پس چه فرقی با شما داره تو اون می‌جگیم می‌بینیم یک ثراظ خیلی بالاتر ثابت میشه من پس توهیدم هم اینجوریه برای خدا شنوسی یک تراز خیلی بالاتر و خیلی لطیفتر و خیلی تاثیرگذارتر ثابت میشه امام معصومم، هم همون جوری که الله باید در دل بندگان خدا جا بگیره یه وقت این حب و فقط با دلیل عقلی ثابت کنیم با دلیل کلامی ثابت کنیم ببینیم خیلی ظرفیت نداره که ثابت کنیم شما باید خدا رو دوست داشته باشیم خب حالا یکی از من خدا رو اعتقاد دارم ولی الله چرا داشته باشم محبتی بحث عاطفیه ما بحث عقلی رو پذیرفتیم که آقا برهان نظم از البناتدالاللبانی ما اثبات کردیم خدایی در عالم هست. خب اینقدر رو ثابت کردیم. اما این خدا باید این هم باشه. وجوب شکرم حالا ما یه جوری تونستیم تقدیر کنیم. اگه حالا تونستیم باز بدون مناقشه تقریدش کنیم. اما وجوب محبت خدا رو چجوری ثابت کنیم؟ اصلا محبت خدا واجبه. این ولزین آمان اشد حبا لله. و امثال این آیات و روایات چرا ائمه و تا مینفی محبت الله هند؟ ضرورتش؟ چیه اصلا آیا جز به صفات امام معصوم هست؟ که هست که در جامعه کبیره داره مطرح میشه و تامینه فی محبت الله اصلا حب الله در نگاه کلامی محبوب بودن خدا حبیب بودن خدا مطرح نمیشه یعنی اون رسالتشون این مباحث نیست نه اینکه که باز نقصان بخوایم هر شکریم نه اصلا در هیته رسالته خود ما خود خواستیم خدا ثابت کنیم در مقابل منکر خدا و در مقابل منکر خدا با این برهان ها ثابت کردیم میگیم حالا خدا رو ثابت کردید خدایی که باید ازلی باشه ابدی باشه خالق باشه رازق باشه عالم باشه قادر باشه عل الاطلاق ولی خدا مهربونه ما باید اعتقاد داشته باشیم ما که خدا مهربونه باید این اعتقاد داشته باشیم که خدا غفاره، خدا عفوه. باید این اعتقاد داشته باشیم که خدا و امام معصوم ولیش رسولش سلام الله اینا هم دلسوزی دارن نسبت به حال امتشون اهل مکتبشون و تا جایی که حالا سالاشو فقط اشاره کنم آیا امام باید انا نمرز و لمرز و باشه در علم کلام نه ولی در معارف چرا چرا این تفاوت وجود داره به خاطر این که معارف به تمام جنبه های معرفت الامام میپردازه و شیعه باید با امامش معنوس باشه باید اصلا محب به امامش باشه اصلا خدا محبت خودش هم میخواد. قل این کنتم تحبون الله فتبعونه قرار محبت الله ثابت بشه که تبعیت تبعیت رسول قرار حب الله ثابت کنه. پس حب الله مهوره. حتی عمل اونجا برای اثبات حبه. جالبه که این آیه داره میفرماد که بهشون بگو. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اگر راست میگی در دعوی حب الله صادق هستین تبعیت کنین تا باور ما بشین و من الناس ما يتخذون من دون الله اندادن یحبونهم كحب الله یه ند های برای خدا قرار دادن کنار خدا اد خدا قرار دادن یو حبونم که حب الله اینا رو محبوب خودشون قرار دادن همونجوری که خدا محبوبه یعنی حب اللهه و داره این آیه اعتراض میکنه به کسانی که محبوبی در ردیف خدا انتخاب کردن یو حبونم که حب الله و فوری آیه متذکر میشه که والذین آمَنُوا اشد حبن لله ولی مؤمنان خدایند. خب عاشق خدا بودن، اشد دوحبان الله بودن، جزء صفات خدا هست، محبوب بودن، جزء صفات رسول هست، محبوب بودن، جزء صفات امام هست. حال دین اهل الحب و البغز. نگاه به دین. اشکال و در بحث خدا و رسول و حجت خدا نیست. بحث قرانم هم همین جوریه یعنی دو تا نگاه داره. بحث معارف دیگه هم همینجوریه. اصلا بحث دین اینجوریه. دین رو یه وقت به عنوان مجموعه ای از شریع الهی تعریف میکنیم که آدم دیندار باید دین داشته باشه یعنی قانون خدا رو باید بدونی و سرلوهه زندگی خودت قرار بدی خب پس دین میشه مجموعه معارف اعتقادی و معارف اخلاقی و احکامی و هرچی که بشر نیاز داره مجموعه نیازهای بشر رو در یک قالب دینی توسط رسولانش و امامان معصوم ابلاغ و حفاظت کرده آیا دین همین رنگ و رو رو داره دین دیگه زاویه دیگه نداره یه مرتبه با این روایت رو بدونش حال الدین الا الحب و الباز که این وقتی کنار آیه شریف قرار داده میشه که اگر راست میگید در دعوی حب الله صادق هستین فتبعونی از من پیامبر تبعیت کنید تا خدا هم شما رو متقابلا دوست بداره یه حبب الله اینا چجوری با هم سازگار میشه وقتی هل الدین الا الحب یا حل الایمان ایمان الا الحب و البغز. و تأکید رو بحث محبت اساس اسلام حبنا اهل البیت محبت محور دیگه بحثش انقدر واضحه در معارف اهل که مکتب ما قطعا محبت محور ترین مکاتبیه که خدا یعنی اونا شعارشو میدن ولی سرمایهش تو مکتب اهل بید علیه من سلام وگره مسیحیت به شدت به این شعار محبت میپردازه که ما اهل محبت هستیم ما کسی تو صورتمون هم میزنه اون طرف دیگر میگیم می این طرفم بزن ببینید ما چقدر محبت و داریم چقدر ما صلح طلب هستیم اهل آرامشیم اهل خشونت نیستیم ولی شعار محبت تو مکتب اهل بیت که کاملا پدیداره و موج میزنه. خب پس خلاصه عرض این شد که هم در بخش توحید، هم در بحث رسول شناسی، رسالت، هم در بخش امامت و امام شناسی، هم در بخش قرآن شناسی، قرآن رو فقط به عنوان یک مجموعه از معارف بیان شده اما از احکام همونجوری که رواد اشاره کردن، صلصون رب آن اشاره کردن دیالا بخشش اکام بخشش درباره ماس بخشش درباره دشمنان ماس و امثال این تعابیر قرآن معرفی میشه با یک مجموعه بنابراین دفاتین از معارف الهی وحیانی ولی یه مرتبه می‌گیم اصلا قرآن یه جایگاه دیگری پیدا می‌کنه در روایات یعنی به عنوان کتابی که معجزه پیامبره حد بحث کلامیش اینه کتابی که معجزه زمانیه که فساحت و بلاقت تو اون زمان حرف اول می زنه بنابراین معجزه به تناسب اون زمان باید یک کتاب فسیح و بلیغی که ادعای تحدی هم باش همراه هست و عاجز شدند. از این که بتونن رو بیارن و خود این کتاب هم به این تصدیل کرده کتابی که تحدی میکنه و کتابی که رقیب نداره هیچ بشری نمیتونه این کتاب رو شبیه سازی کنه و معجزه پیانبره خب در این حدش در کلام سر میشه اما دیگه بحث اینی که قرآن اصلا روز قیامت میگن اقر ورق یعنی یک جایگاهی که ارتقای برای قاری قرآن برای کسی که قرآن رو نیاموخته در قبر یه ملکی خدا روایت میفرسته ملکی میفرسته که شیعهی که قرآن بلد نیست تو قبرش تعلیمش کنه یعنی شیعه نباید قرآن بلد بودن که در کلام بهش نیمیفرزن ولی قرآن وقتی در روایات می‌بینیم سراغش اصلا می‌بینیم قرآن شافعه، قرآن غیر از اینی که کتاب متن دینی این مذهب مقدس اهل بیت علیه السلامه رو با مباشرة حاشیه ای که داره این قرآن نور است نور هدایت می‌کنه قرآن اصلا شاکی میشه روز قیامت و روایاتی حول درباره قرآن هست درباره قرآن درباره امام مرسل درباره رسول صلی الله علیه و آله و سلم و درباره خود توحید دو که میکب بحث داریم و تفکیک که بین این مباحث یه مقداری باعث دور شدن ما از فضای حقیقی معرفت الله و معرفت الرسول و معرفت الحجه است خیال میکنیم اینا یک مباحثیه که مثلا مصابت بحثه که آدم بدون امام محسول مهربانه نه در معارف اهل بید مثلا تأکید میشه که وقتی میفهمن انا نم رجل میخوان امتشان این نگاه رو به امام معصومش بیدا کنن. یعنی امام معصومی که جنبه مولویتش و واجب الاطاق بودنش کاملا مهرزه، باید جنبه مهربانی و اطوفتش هم کاملا منعکس بشه در قلب بشه. باید اصلا فضائلش دانسته بشه. اون فضائل ضرورت کلامی نداره. بخش زیادیش نداره. ولی احل بید میپردستن. میخوان امامو اینجوری بشناسیم ما. رضا روایت امام رضا علیه السلام یکی از بهترین و کلیدیترین روایت هست دارین باب خب یه عده نشستن تو مسجد دارن در باری امام بحث میکنن این سبب میشه که حضرت وارد بشن و یک حدیث بسیار زیبا در بحث امام شناسی بیان کنن زیارت جامعه کبیره خب زیارت جامعه کبیره خیلی فراتر از بحث کلامی امامته و این به معنای این نیست که مباحث مباحث اضافیه این مباحث مباحث رجحانیه و در امام شناسی نه این قدم ما لازم نیست اصلا امام شناسی با تمام وسعتی که داره رسالت شناسی با تمام وسعتشه و معرفت هم همینجور اینی که ماه رمضان خدا خودش تو دعاها توی فضاهای محرم از نشون میده و رحمتش و مهربانیشو رو و سفره رنگینش رو برخط میکشه که این چه سفره ای براتون پهن کردم ماه برکت ماه رحمت ماه مغفرت ماه اجابت که اولو رحمه وسطش اوسته مغفره آخرو الاجابه خدا داره میگه من مجیبم من مجیب المسترم امام معصوم علیه السلام به همون سبکی که خدا میخواد مهرب رو ثابت کنه امام معصوم میخواد ثابت کنه که والله را اینا ارحمو بکن من کن و انفاس کن بفرمهد و اگر میفرمهد اینا نم میخواد ثابت کنیم من اصلا خیال نکنیم من ف... یک فرمانده و یک مولای س میوام دستور بدم به شما فقط من در عینی که واجب الاطاعهام در عینی که فرمان میدم و شما باید یک سر سوزن هم تأخیر رو تردید نکنید در عین همه این مقامات و ها من ارباب مهربانم من ام که دیگه صحنه آشورا نشون داد امام معصوم چه جوری باشی تا میکنه با قلامش چه جوری رفتار میکنه سن چه جور دل سوزی می‌کنه چه جور شفقتش رو به رخ عالم میکشه و خیلی ها تحت تشدید این فضا قرار می‌گیرن تو بحث معرفت الله خدایی که ابو حمزه معرفی میکنه خدایی که این همه آیه و این همه حدیث درباره این که نسبت به این خدا سوء زن نداشته باشین به خدا حسن زن داشته باشین و با خدا معنوس باشین با خدا رفیق باشین خدا به شما مباهات میکنین خدای کلامی که مباهات نمیکنه به به بندشکه خدای کلامی فراتر از ولی خدای معارفی نه همه اونا رو داره همه اون صفاتی که در بحث کلام ثابت میشه دارا هست ولی کلی هم صفات دیگر اضافه میشه تا خداشناسی درست بشه امام شناسی و امام زمان شناسی با تمام وسعتش باید در بحث امامت بیاد در میدان و انشالله حالا چون بنا هست که مجلس مختصر باشه دیگه نهایتش نیم ساعت و بعدش در محصر دوستان بشینیم یه بحث آزادی که هم اصفار نواشات دوستان استفاده کنیم دوستانی که وقت دارن ولی این مجلس بهانهی باشه حالا هم برای مقدمه توسطی باشه هم هم که دیگه علمای اعلام حوصله چندانی هم ندارن ماه رمزان هم هست خسته و بداخل عبادت و همینجور انفاس و کنفیه تسبیح و نوم و کنفیه ممکنه یه وقت وسط منبر هم به این عبادت مشغول بشن جز احتیاط در همینی که حد اکثر همون نیم ساعت باشه انشالله توسط مختصری هم داشته باشیم که انشالله این بحث حالا یعنی امام شناسی با سبقه غیر کلامی با این مقدمه ای که عرض کردیم امام شناسی با سبقه غیر کلامی و حالا اسمش رو هر چی میخوایم بذارید سبقه معرفتی بذاریم. امام شناسی در کلام خود معصوم در کلام وحی امامی که خدا اهل بیت میخواد معرفی کنند که چقدر اعتلای پیدا میکنه امام معصوم در این جایگاه و اونی که مردم رو شیفته این خانواده نور کرده این نوع معرفت، اون معرفت خشک اعتقادی این آثار و این برکات رو نده آثار برکات خودش رو داره صلی اللہ علیکه یا عبا عبدالله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله بجوز حسين رومم الجوع فنوهي حسین است و دوستی حسین به سوی حق به جز از این تری صفت اللهی رحمت و مغفرت خدا او میشه ولی خدا همین صفره رحمت رو هم با آغوش رحمتش آب همراه میکنم دیشب شب اول رمضان خدا میگه برو کر ولای حسن ماه نیمه میشه 15 روز سر سفره خدا در رحمت خدا و مغفرت الهی سپری میشه خدا باز میگه کربلا کربلای حسین ماه به آخر میرسه سی روز بیس و رو نه روز الهی با انفاس تسبیح شده و خواب عبادت نوشته شده و یک آیه ختم قرآن شده تمام میشه باز خدا میفرماید برو کربلا یخسه سفره رو جمع میکنه روز پاداش یوم الجائزه است لیلت الجائزه است شبی فطرم خدا میگه برو کار بالا یه حس حساس ترین لحظات عمر یک مومن خدا میگه برو کار یه حس اصلا خدا میخواسته برای شما خیر خویک کنه قذف فی قلبه حب الحسن وحب زيارة بعد از اون خیر خواهی ایجاد داره در هر فرصتی شما رو دعوت کنه به کربلا حسین دور نزدیک ندار باید خودمون و این روزها در این فرصتها حتی اگه نزدیک نشد در هر که بودیم خودمونو برسونیم کربلا دلمونو بفرستیم کربلا خدا میخواد خیر خواهی کنه برا همه آلم میگه برو در حرم حسین صد مرتبه گدایی کن خیرت از در خانه خدا یکی از اعمال حرم ابی عبدالله صد مرتبه استخیر الله برحمته خیارتا فیا و فیه یعنی اگه خیر میخواد برو در خانه حسین سعادت میخواد برو کربلا آغوش باز رحمت خدا ابی عبد در ماه زیافت الهی خود برسون به آغوش رحمت خدا خودتو برسون به اون ای که در آغوش اربابت وقتی بال فرزد خدا به داد عربابت رسید و رضیه او به دم الورید مخلبان فطلب رضیه ببینید ببینید غلام را ابن اگر آمد می سر جان دا ای وای ای وای بلایی به سر آورد آوردین تیر سشو خدا تو همه سعنه تماشاچی بود و تحزین میکرد عبا عبدالله رو ولی در این داد خدا به دادش نسید دعا یا حسین دیگه این غنداقه فرسونو کن و به بابست بایایا. اون روایت دفع لافات مرم بگذار کنار این مقتر هر طفلی از مومنین از دنیا بره قبل از پدر و مادر عزیزانه خدا این بچهها را به بیبی بی دو عالم بیبی بی براشون مادریمیکنن دفع علی فاطمه عل اسغرم قبل از پدرش به شعادت رسید قبل از مادرش از دنیا رفد علل قاعد دفعه لا فاطمه بی بی برای همه مادری کنه باید بیاد برای خود خودش ما مادری کنه شاید قدری دل رباب تسکین تسگین بیاب ارز آخرم آخه بیبی بی برا بچه خودش که نتونست مادری کنه بچه شو لگد بین دیوار در ای مرا و غیر و یکتن به اون نگام زن را کسی مقابل شوهر نمیسنم من استاد بودم دیدم که مادرم را دشمن گایی به کوچه، گایی به خانه می زند. روز اول رمزان مادر بیاد به فریاد همه چشم انتظاران فرزنده امام زمان قریبش برزه مادر دستی به بردار. بی بی خوب بلد دعای تعجیل بخوان، امه میگن به ما امیر المومنین به زبان آل میگه بانو به ما بچه میگن مادر به ولی جوری عجل وفاتی سریعا گ شاید بیبی دستی بدآ بر اللهم أجل وليك الفرج بیبی با بی بی اجابت مقرون بشه، گردید بود قنف، ام دست با وبعغلاف جمجيب انتازي عالمين فنجيب وكان سبب وفاته أنه انفز مولا فلا لكذاب على يا رب فاطمة بحق فاطمة أشب صدر فاطمة بظهور الحجة يا رب الحسين به حق الحسين أشب صدر الحسين به ظهور يا رب الحجة به حق الحجة صدر بظهور الهجة فرج عنهم فرجا عن عاجلا غريبا وفرج عن جميع شيعته ومحبيه حي وميت سيما المنظورين منهم بجاء محمد وآل الطاهرين